این فرشها برای صادرات است. ما این فرشها را به اروپا میفرستیم. در کشور من هم فرش ایرانی معروف است. البته، فرش ایرانی بهترین فرش دنیاست. نقشه فرش ایرانی بسیار قشنگ است. در ایران فرش را با دست می بافند، بله، هنرمندان ایرانی با دست فرش می بافند کارخانه های فرش هم در ایران هست پس در کارخانه هم فرش می بافند بله، البته فرش دستباف گرانتر است درست است این فرش ها رنگ های زیادی دارند جالب است این فرش پنجاه رنگ دارد آن فرش صد رنگ دارد صد رنگ جالب است به همین خاطر این فرشها مثل تابلوی نقاشی هستند بله هنرمندان ایرانی از قدیم فرشهای زیبا و قشنگی میبافند این هنر خیلی قدیمی است بله قدیمیترین فرش ایران در موزه فرش سه هزار ساله است. شما هم می توانید فرش ببافید؟ بله، پدر و پدر بزرگ من فرش باف بودند. من هم می توانم فرش ببافم.